زمان فصل سوم اجرای حکم دادگاه تفتیش عقاید هنگامی که دادگاه تفتیش عقاید کارش را به پایان میرساند، مجازات‌های در نظر گرفته شده برای کسانی را که گناهکار تشخیص داده می‌شدند اعلام می‌کرد این توصیف برگرفته از کتاب ادوارد بورمان به نام تفتیش عقاید وسیله سرکوب بدعتگذاری، از اجرای پرطول و تفصیل یک حکم دادگاه تفتیش عقاید است که در سال 1680 در مادرید در حضور پادشاه اسپانیا و تمامی درباریانش صورت گرفت. در ساعت هشت مراسم آغاز شد. سی مرد وارد شدند که تصویرهای مقوایی به اندازه واقعی حمل می کردند. برخی از این تصویرها نمایانگر کسانی بود که در زندان مرده بودند و استخوانهایشان نیز در صندوقهایی آورده میشد و هایی در گرداگردشان نقاشی شده بود و بقیه تصویرها نمایانگر کسانی بود که از دست دادگاه تفتیش عقاید گریخته و مترود اعلام شده بودند این تصویرها را در انتهای آمفیتعاتر قرار دادند پس از اینها دوازده مرد و زن وارد شدند با توخهایی بگردن و مشعلهایی در دست و با کلاهای مقوایی با حدود یک متر ارتفاع که جرائمشان به شیوه های گوناگون روی آن نوشته یا مجسم شده بود. از پی آنها پنجاه نفر دیگر بودند که باز هم مشعلهایی به دست و جامعه بلند زرد رنگ و بی آستین به تن داشتند. با یک صلیب بزرگ سنت آندرو به رنگ قرمز در جلو و عقب. بعد 20 مجرم دیگر وارد شدند که به حال اول بازگشته بودند. کسانی که نشانه‌هایی از توبه به دست داده بودند، قرار بود نخست خفه و سپس سوزانده شوند. اما بقیه چون سرسختانه بر خطاهای خود اصرار ورزیده بودند، قرار بود زند زنده زنده سوزانده شوند. اینها قباهای کرباسی بتند داشتند که بر روی آنها شیاطین و شعله‌های آتش نقاشی شده بود و کلاههایی به همان سیاق پنج یا شش نفر از آنها که بیش از بقیه سرسختی نشان داده بودند دهانشان را بسته بودند تا نتوانند عقاید کفرآیزشان را به زبان آورند تمام کسانی را که محکوم به مرگ بودند علاوه بر دو آشنا چهار یا پنج راهب احاطه کرده بودند که همانطور که پیش رفتند، آنها را برای مرگ آماده میکردند اقدامات علیه پروتستانها. تفتیش عقاید اسپانیایی در تلاش خود برای ایجاد محیطی پاک در اسپانیا، علیه پروتستانها نیز مانند یهودیان و مسلمانان اقدام کرد. دیگو دو استا، یک اسپانیایی دارای عقاید لوتری بود که به خاطر عقاید پروتستانیش از سوی دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا زندانی شد، مورد بازجویی قرار گرفت و محکوم شد. تاریخنگار پل جهوبن در کتاب تفتیش عقاید اسپانیایی محکومیت دیگو را نقل می‌کند ما مأموران تفتیش عقاید دریافتیم که متهم در موارد زیر مرتکب بدعتگذاری و ارتداد نسبت به دین مقدس کاتولیک شده است نخست آنکه در گفتگو درباره راهب شرور و بدعت‌گزار مارتین لوتر دیگو دو استا گفته و تاکید کرده که لوتر در موضوع اعتراف خوب سخن گفته که مردم نیاز دارند که تنها در پیشگاه خدا و نه نزدی اعتراف کنند. هنگامی که او نکوهش و به او گفته شد که آموزه کلیسا عکس آن است، دیگو در خطاب لوتری خود باقی ماند. هنگامی که کسی گفت که لوتر بدعتگزاری نفرت انگیزه است، استا پاسخ داد که هر آنچه لوتر گفته بد نیست. مثلا آنگاه که میگوید. تمسالها اصلا نباید باشند و آدم باید تنها خدا و آین مقدس را ستایش کند و تمثالها تنها به کار ساده لوهان می آیند و نخیرد مندان. دیگ دو استا هم نشین بدعتگزاران و حامی آنهاست. او بدعتها و خطاهای زیادی را نسبت به بدین مرتکب شده است. بر اساس این و دیگر اتهامات، مدعی العموم از ما خواسته است که اعلام کنیم که دیگو و دو استا بدعتگزار است و نسبت به آین مقدس کاتولیکی و دین مسیح مرتد بوده و هست و حکم تکفیر و مصادره همه اموال را به جان خریده است که اعلام کنیم که اموال او از روزی که مرتکب این جرایم نسبت به دین شده است به خزانه سلطنتی تعلق دارد و اینکه ما او را برای اعدام به نیروی عرفی تحویل می‌دهیم. یک زن انگلیسی قربانی دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا می شود. الیزابت فاسكونلوس زنی که در دونشایر متولد شده بود با مردی ازدواج کرد که در جزیره جامایکا زندگی میکرد. ناخداهای اسپانیایی او را اسیر کردند و به اسپانیا بردند. که در سال 1685 در برابر دادگاه تفتیش عقاید در مادرید حاضر و شکنجه شد. تاریخنگار نگار ال هیبرت در کتابش پایان تفتیش عقاید اسپانیایی گزارش باسکونلوس را از شکنجهش که 15 سال بعد به دو شاهد در لیسپون داده بود نقل می‌کند. در هفته اول یا در این حدود تنها نان و آب و پوشال مرطوبی برای خوابیدن به او داده شد وقتی او را پیش مأموران تفتیش عقاید بردند اظهار داشت که مذهبش پروتستان است و در این مذهب باقی خواهد ماند آنها به او گفتند که او با ازدواج با یک کاتولیک رومی دین رومی را پذیرفته است و اگر آن را انکار کند به تیرک مرگ فرستاده خواهد شد سپس او را به سلولش بازگرداندند و یک ماه بعد باز هم نزد مأموران تفتیش عقاید بردند. وقتی پافشاری کرد که پروتستان است، او را تا کمر برهنه کردند و با تناب گرهدار شلاق زدند. پانزده روز بعد، یک بار دیگر او را نزد معموران تفتیش عقاید بردند. یک شمایل ایسای مسلوب برپا بود و به او دستور داده شد زانو بزند و آن را عبادت کند و وقتی او از این کار امتنا کرد، به او گفته شد در مراسم اجرای احکام بعدی او را زنده در آتش خواهند سوزاند باز هم او را به سلولش بازگرداندند و یک ماه بعد برای بازجویی مجدد بردند این بار مجازات شدیدتری اعمال شد با یک آهن سرخ شده سینه اش را در سه نقطه تا استخوان سوزاندند سپس او را به سلولش بازگرداندند بدون آنکه مرهم یا زخمندی به او بدهند که به تسکین درد زخم‌هایش کمک کند. اخراج یهودیان یهودیان اسپانیا در میان صحنه‌های جانسوزی از درماندگی و رنج انسانی اسپانیا را ترک گفتند. فردریک دیوید موکاتا در کتابش یهودیان اسپانیا و پرتغال و تفتیش عقاید رنج و عذابی را که آنها در این مقطع متحمل شدند به تصویر کشیده است. در این آخرین روزهای اقامت در اسپانیا صحنه‌های های و دلخراشی به چشم می‌خورد. در اکثر جوامع یهودیان به مزار نیاکانشان می‌رفتند تا با آنها ودا کنند. در پلاسنسیا یهودیان گورستان خود و قطعه زمین نسبتاً وسیع مجاور آن را در اختیار شهر گذاشتند به شرط این که بر روی گورستانشان هیچگاه بنایی ساخته نشود. در ویکتوریا توافق مشابهی صورت گرفت و در سگویا آنها در میان عشق و اندوه سنگهای گور بسیاری از پدرانشان را برداشتند تا آن را با خود در سفر دور و درازشان همراه برند. در تمام ماه غمنگیز جوئیه در طول جاده های اصلی اسپانیا صفحای طویل یهودیان را می دید، برخی در سن فرسودگی و برخی در لطافت جوانی. بیمار و لنگان، ضعیف و ناتوان و دارای سرنوشتی مشترک، رانده شدگان در زیر آفتاب سوزان به راه خود می‌رفتند و در بستر دشتهای خشک و غبار آلود و بر فراز کوهستان‌های خشن و صخره‌ای و از میان های سنگلاخ که مشخصه این شبه جزیره بود، به سختی راه می‌گشودند. در حالی که تومارهای کتاب مقدس خود و چند یادمان از ثروت برباد رفته خود را به همراه داشتند و پی در پی نگاهی حسرتبار به پشت سر به خانه های عزیزانشان که دیگر هیچگاه نمی آنها را ببینند می‌افکندند.